داره مجمعی موامد فرناه جمعی, جمعی المشتقلی مرحبا برحمتی که مرحبا شد در بحث آموخات مطلب بعدی رو که مشایخ نجوم به خود حضرت استاد برمید شدن در کتب احلت خوند. هم در جا آمده و در کتب قدیم شیعه سفرس در زده ایسه منتظه تخصیص به واحد این روده اجماعی هست کردم که کسی وقت یک سوار رو با تخصیل بیشتر نمیشتن با اونه دلی منتظه باید حس و باید عربان دیگه متعرض من نمیشون خداهایی میتونن مراجعه یکی صورتی شد این تخصیصه به خبر واقعه لیکن در کتب از ما یعنی مثل همینی که آقایی که الان محل کار ماست من کتب اصولی دیگر نگاه نگردم مثل مفاتی رونا غالبا همین بحث و مرموم افتادم به خواهند بقیه الان این بحث رو در این جا به اصلاح کار بردن دورد شدن که در کتاب خبر واخت تخصیص میشه نمیشه از که این روز اجمال رضیه این که برای هم این صحبتی شد در تختیس که بعدها هم در درده از خطب آمده مسئله روایت بود که رو برد کرد که نحن ما آشار رحمیان که در مقابل اطلاقات عرص که راستا لذکر مثل حضرت هم وقت دیوز عبارت زرکشی رو در کتاب از بحر محیف کن دیوشیشون همی شبوز در نهله و اجمال هست کرد که ادعای حضرت زرکار سلام الله علیه ها. هم نهله بوده هم نیراث بوده یه نظاری حبارات خوده از خواهر ما هم افهان دارد و این این به تحقیق دیگری داره این صاحب هم از هم دیدن باز هم نیازه به شهر داره نیازه به مطلت داره به این مقداری که نوشته شده به در کافی نیست چون خود فیرم برده شده این داره بودن حالا قیبت خانه ها یکی منکی ایشان بود یکی شما اتاری که یه خانه که مال آیشه بود خانه ای که مال حفظه بود و تا اون مشرقه اون ابراهیم که از ایگاه قبار بود خانه یه زنهای پیغربر پنج شیش باشن از ایگاه هم بودن دویترین اون مشرقه و یه مقدار املاک دیگه هم پیانبر داشتن از اصبا اینها اون دعوای میراست در مجموع اینها بود خود در حق سنت همه عباراتشون خواهی از تحافظمی در برزش داره که حال پیغمبر هم مطالبه میراث کردن اینجور دارش در برزش نداره ساکت هم پرن یعنی هم زفا مطالبه در حق داره هم مطالبه میراس داشتن و هم مطالبه نهله داشتن و هم مطالبه یک حقا عمومی داشتن این ستا کمتر در عبارات آمده مورد از حقا عمومی اون صحنه که برای تقنبر خیبر بود چون بعد از این فتح خیبر شد بنا شد که خیبر در اختیار خود یعنی بمانه ببانه قلاب خیبر علاقایی که داشت خود اونها در اونجا که کنن که خورما بیشتر کاشته بودن چون جزه مناطق پر آق که ساخن شد حسولا حتی در خود تو زمین هست یهود از بیتر مهدس رو در نظر بگیریم، اینا منتشر شدن به طرف جنوب تا به اصطلاح رسیدن به حدود مدینه یعنی از بیتر نقشه نگاه بفرموید تا حدود مدینه این فاصله رو به جهات مختلفی یهود سکنا کردند. یه مقدارشون، ستارکشون، ولی ندیر و قارضه و قیمه ها بر خود مدینه ساکن شدن یه مقدارشون تو خیبر که کشار هزی میکنه تو مدینه ماسته بیروده برشون تو جال فراوده یه مقدارشون تو خیبر اونگر داشتون تدر از مدینه هم اگر حساب رو به نقشه ببینیم تا حدود دیت المقدس رو این رو استراهم که سحرا هم هست الان راه ماشین رو داره که میبینه به هردون و سوریه یه مقداری از این صحرا هم در اختیار یهود بود یعنی به تعدده اران زنی روستایی دهی یا مجموعه آمی تشکیل بدوند که به اصطلاح در اصطلاح اون زمان این مجموعه این صحرایی که موردین مدینه تا شام بود تا بیت المردست بود واضع می گفتن واضع قرآن و مانگرایش وادی برای موضوع نمادینه وادی بزرگ که الان ازشان ساخته شده شن زدی شماره متحده کنده این رو وادی برادر میگوته چون به اصطلاح حضرت ابراهیم صلّی الله علیه و آله فرزندی رو کرد تمی دشون حاضر بود اولین تا مکه این فرزندانه به اصطلاح اسحاق چون اسحاق برادره هست فرزند ورره بود اسحاق بعد از اسحاق هم یعقوب فرزند اسحاق یعقوب که شیع یعقوب ملاقات شد به اسرائیل یعنی کسی که اولین بار به اولاد اسرائیل گفته شد یعقوب که یعقوب 12 اولاد داشت کهشون توسط معروف بشه و و انتشار بتون بنی اسرائیل بنی در اسرائیل بتون 12 گانهشون به خاطر جریان یعقوب بود که نام اسرائیل بشتاده شده بود به اسرائیل معلومه و هی این تخصیم بندی دارن در اینها رو تخصیم میکردن هر میشه هر سولانی این فرزندان اسحاق هم شروع کردن به پیش تا نزدیک های مکه رسیدن به خود مکه نرسیدن اسم هایی سرامولا در مکه بود با مادر شاجر که بردها با آمدن جرهم که روز حرب قدیمی بود اینا به هستای آشار شدس مکه کردن دو ازدواش شده داخل این یه شاخه یه از اولاد حضرت ابراهیم بود یه شاخش هم تر و یعقوب اسرایی که معروف شدن بعضها به بنی اسرایی از این دوازده بچهی ای که پسری عبوب داشت بنی اسرائیل معروف شده بیره اینا آمدن تا نزدیک یک مدینه یعنی فرزندان دیگر ابراهیم اصحاقی ها اونا هاجری ه ها اسمایلی ها بودن اینا اسحابی ها یا اسرائیلی ها بودن تا نزیبه این مدینه که بر یعنی های شوش تدریجه و این رو از مدینه بیرونی کردن سطایت که شکر سردن و فقط خیبر مید فدک هم که تفکیم شد خیبر رو هم برقا عمر بیرونی کرد یعنی بودیه خیبر رو در زمان عمر از خیبر بیرونی کرد که دیگه تهرانی این پاک ما از بنی از اول <سؤال> از اول از اول از اول که اول که اول از اول از اول از اول از اول وقتی قصد این چون میگم گفته نشده من واضح این بستانی ما خواستم بشه میشن من وقتی شما رو رکم برای تاریخی مدعیات حضرت زهرا در حقیقت این بود یک مسئله میراث بود حالا یک شرکی داره که مجموعه اموالی که پیغمبر داشتن چه بوده؟ مثلا اص داشتن شکل داشتن سلاح داشتن دباسه خودشون بوده خانه که داشتن مساکنی که داشتن. در مکه زارعه چیزی نداشتن در خود مدینه الهی همین این 7 تا باغ هم. اون یهودی که اسمش میشن بازگذر روایت‌ها اوخیره ها با می مخیرت موخیره سال یهود یا مثلا 7000 یهود قزای یهود اسلام این هفت داشت بود. داشتن باغ در اون زمان خیلی علامات تشخیص بود چون بر فرق من اگر جایی آب بود چند تا درخت میکاشتن و آقاشون بی درخت بود. در لغت عربی اگر اون مجموعه درخت ها دیوار داشتیم یعنی بی درخت مرزه بی دیوار اگر مجموعه اون درخت ها دیوار داشت اش خایف میگفتن اگر دیوار ندارشن بستان میگفتن یا حدیقه میگفتن مثل ما لحظه خایف یعنی مجموعه درخت هایی که داره دیواره اون در خود اصطلاحیه بودی اگر اون با کوچیک بود یعنی دیوار داشته کوچیک بود هشت بشین گفتن هشت کلکر باقچه بود ما اصطلاح هم میگیم باغ و باقچه در لفظه عبریز لفظه هشت لفظه عبریز که در عربی هم که به اصطلاحیه میگفتن میگفتن حرف که احتمالا اگر دعای سما هم کنگه باشیم فوق احساس کردیم اون هست در اونجا اون احساس بین فوق احساس یعنی باقشها و باقها و بوستانهایه این هست معرب کلمه هشت به معنی باقش هست. این نیست از کلمه تا زیده فوق احساس کردیم این خواهی شد تصییلی که با همزه تر پمزه احساس همین که و باهایی که ملانکه ایداری دارند به مناسبت خودش الان شیفه ما کنم این حق تا باق داشت که فاصلش هم از هواید و سروه این در ایک سور پیمنبر بود ظاهرن بخشای همزرد و خانمهای هزار همزران همزرد از او استفاده میکردن این ظاهر بود و باشه من وارد به شهر شهر بشم و استبلاد حضرت زرداری اگر دفت بکنیم غیر اطلاعات های عرض اون نطرش این بود که ابو برکت در نه و ماهاش رنگی ها لا نورده است اولا خب اطلاع با اصولی ها این جمله قراریت که نمیشه در مقام این شاه باشه یعنی این جمله لا نورده است تو مقامه نشانی چه میگه؟ ما تغمبر اکم برداره هم بیار سابقه رو معیم بکنیم من نداره که میمخواد تغمبر اکم بریم های هم بیار هر ندستن تلسری کنن یکی اونی که داره حدیث خبریه باشه نه جمعه انشاییه چون شدیه این انشاییه این این اینجا این جمعه خبریه باشه و افتیم این معناش اینه که مثلا سال دویست و ولی انسان دوست که 200 و 40، 200 و 20، 200 و و اینها امضاشونه، این ها از داده نشود. من فکر میکنم بعد از اینکه او این معنای غلط را ترک کرد، خودشون تعبیر که این خیلی حرف 200 با یک، حساب درست 200 سالگی. چون واضح بود الان هم که شما می روید در کساب وقت سنت الام هاشالله اسرائیلیات وجود دارد هم یه اسرائیلی با فضایات در یک روایت اسرائیلی هم ما نداره چون سن هست موسا که خوب کرد مثلا لباساش و خونشه به بره را دارد به بچه یا یک تیغم بخیر کردیم ما در قصدی که الان از انبیار بنی اسرائیل داریم و فی هم قصد و سمید که چقدر توی دروغ داره با تمام این حرفا حتی در یک پیغمبر از بنی اسایی نداریم که گفتش شده باشه که بعد از فوتش آمدن هموانش رو پخیم کردن به خوارها و لذا من فکر بکنم و مدید میدونم آیاتی رو که از زرنا خوندن و همین داره از سلیمان و دابود اینه از زرنا نظرشی که از خود قرآن از انبیاء طالقین تحریر به نیراز شده چی یعنی من احتمال می‌دهم اون حدیث ان لا نوار بینان را لا بیانان ان منظور که ما هم جایی در کافی اومده مراد ایشان بر این بوده این اولش نفهمیده به هر حال اینا به نظر من خودشون تحلیل این حدیث خیلی کارگشایی نداره ولی خب حدیثی دارم. من نهارت ما هم داره واسون هم نعر ما احتمال لا نبی او تومه الا قناه بلاری من او این یکی رو انداخت جلو رو ما هستم الله و نبیه و تعمه الله از ولی یه همه که فدک ما با این حدیب تطریق برای جبدان عبو برد به نظر من این توجه نکرده اصلا تأدیر ولی ام هم در ذراسته هم بخونده که مثل اونظور لاولی یه همه این توابیر نداری ولی گره هم این تعبیر میدونم الان این که ما کنم من باز این وقت در وقتی مجموعه شباهه نشون میده اونی که محله کلام بوده یک نهله بوده که فدک بوده بزن مسیحه تر هر سر هنوز بزن هم روشن نیست که نهله باشه نفته مادم بوده باق بوده امام هستن امام هستن میرفتن اونجا بازن استرارد گردن تحبیر میگن کچیکی بود اما معلوم نیست که حضرت اون رو وحبه ها به خصوص حضرت زهره سلام الله علیه ها این خیلی روشنده صدق واضح حوانت سبقه روشنده و ارض کردم در صحیح بخاری از آیش نرمون که من تو زهنمم تو زهنمم خیلی صاف میسنیم چون استغای منم کامل نیست خود ما نداریم مثلی هم زهجیدی آیش نرمون ما نداریم آره چه میده که از مطالبات از زنداز رسول الله خیبر هم بود این هم خیبر چی بفرده ما نداریم اینه این اون سحم عمومیه یعنی خمس رو چون هم دیگه دیارم شاید تو بحث دیگه خیبر رو که خیرم برفر کردن بنابرای این شد که خیبرشون خود یهود در زباقت وارد بودن یعنی گفتن ما خودمون خود برای از درخت هاش نگهداری بکنیم این هم همه که قرار بشد به اینکه که خود درون در اون قلال خیبر بمونن به فشتکال مشغول باشن مثل شبه برد جدا مثل سلس سلس رو به مسلمین تقسیم اینجوری شد یه مقدار از این تقسیم سهن رسول الله یعنی شده این تقسیم های ما همه خیلی عجیبه آیشه میگه که از از زهرا این سهم رو هم مطالبه کرد. روششون مجموعه این مطالبهات هند از یکی نهله بود که پدک بود یکی میراث بود که حوایز صرعه بود و خانه‌های بیران ور بود. دکتر که بیران گذاشتن اسهای اموالی که بیران گذاشتن بود لباس بیران فرض بود. یکی میراث بود. این میراث رو ها هم دارن که عایشه مطالبه کرد. نهله رو و اینی که الان در زبانها معروفه که ابوبشت فرستاد اون کسانی که برستا. کارگران از زهره بودن از اونجا بیرون کردن از فدک این با شواهد تاریخی میگه کرده شما فدک حضور با مدینه فاصله داره آه هست خودت حضور دیویس شد کیلومتر فاصله داره آدتا این مسافت دیویس شد کلومه دارن اونه به با روی میرفتن آدتا مگه با عسل کردم استاندارد سیر در اون زمان این بود وقتی موطنی یک روز مسیر را با شسر که حساب میکردن چهر و پنج سا وقتی کمینه موطنی موطنی پنجار کمینه یک روز با عصر که حساب میکردن سر و سی و پنج سه روز شسر رو یک روز حساب میکرد این اسطلاح همون استانداردش بود اولا یه چیز خیلی طبیعی تون ببره. استاندارد طبیعی اینجوری بود اگه می‌خوین عبارت رو رو معنور بکنیم میگفتن کاهش از 130 کیلو یعنی بین قوم و تهران تفاوت 130 کیلو فانش شده. نگا ببینید. محض 26 کیلو چیزش روز میشه تو متواضع با اثر رفته یعنی به این سرعت میتخیلاد 1 2 روز اموال از و ضرر کنن احتمالاً اموال عز و ضرر تو بوده که در خود مدینه بوده. این درستی از زهره بوده بعد حضرت به عنوان این اینا آمدن سریعا اونا رو بیان که اگر این قصه ای و درست باشه اینه علایه که ایتماکان اون روایت اصلا روایتی که بردها به نظر من خودشون ها تحمیدن معنان داره و عرض شد دیروز. یکی از نعم الهیه که اون دیگه منشأ اختلاف مذهبی رن شد این تو وقت به خبر واحد اون دیگه وقت تخصیص کتاب به اون. آیه روایت منشه بحث میشه حالا برگردیم به بحث خود رو. این بحث رو از تری همه سنت هم محرف کردن و اقوال رو نسبت دادن من برای اینکه چون طبق قاعده ای که داریم اجمالا کلمات و استاد رو که از فیست شده در اینجا فرمیدن ایشون و از ظاهر انهولا خلاف بین طائفت الامامیه جواز تخصیص اموم کتاب به حبر الواهر که ما اجمال مطلبی که ایشون فرمودن درسته اما نکته شرم میکنه این مطلبی که ایشون چون از کنید ما سه معنای اساسی علاق موانی فرهیش جایی خودش ما در وقت حجید خبر این بعد توضیح میدنید انشاءالله بعد میفرماید مخالف در مسئله از آمند از کنید مثل موضوع مخالف چون خبر را حجید مگه اگه مرادیشان کسانی که خبر را حجید و وقتی ایشان در اول بحثش اول بحثشون اقوال رو نقل کردن پس قول اول جواز تخصیص قول دوم و هم بین من انکر تخصیص بی مطلقه گفتن تخصیص نمیشی زد. و بین من پس این قول دوم سوم تخصیب داده میشه به ما ادا تل آمون کتابی گفتم اگر یک آم کتابی به یک مخصص قدی تخصیص خورده به قبر هیمنت عمومش اگه چیسته شد میشه به خبر باهی تخصیص بخاره این قول سروا و بعد اینشون توضیحی دادن که دیگه آروم مراجعه کنشون ما نیست توضیحی دادن و رد کردن قول چهارون بین مخصص متصل و متصل هم عدهی تخصیص دادن که و قول تنجوم و من هم, هم منطبق نبه پیاد مسئله قول آن قول به وقته که قول باقلانی است و قولو باقلانی به تحبیر ایشان بلا یعنی اون مخصص متصل باشه یعنی مثلا پیغمبر اکرم یا آیل خودن بعد مخصص رو در این با مثلا. مسئله خداوند تجارت انترال است و لا یکی زوب به قرار مثلا چون یکی از متخصصان میگه حوزه راه تجارت انترال که تجارت در شریعت مطلقا کافیه. نمونه حالانی میشه. اصل اینه این در چه چیزی نگذرگیه که لا تنفلوخان به در اجازه چیه معلومه که بنویسه از اون موضوع یک باشه. پس این رو برقرار. پس مربوط به استاد قدس الله و این مسئله در اول مسئله یعنی که مجموعه مجموعاً نه این قسمت اول کلماتیشن بعضیشن متعرض شدن به وش این مثل رو خب وششن هم واضحه دیگه نیم حالی که طولانی صحبت فرمویدن اون روز نیم سردن وشش واضحه اگه حجت شد معنی حجیه هم میگه معنی حجبال ما حجیه کشان خودم نداره معنی حجیه این هست که بتوناه آمه کتابی تخصیص بزنه آمه دیگر. شاید شما اصلا میگه خب این چه ای داره خب اگه معنی حجیت چرا اصلا اخلاف نکنه اگه واقعا به جز خبر یعنی اون چی بوده که این این جور بحث ما باشه که خب هر که خیلی واضحه میگه اگه مقابل حجه معنی حجت همینه خب چه که از اون انجام بده واضن با بزنه واضن وا تغییر بزنه این طبیعیه. یعنی این یک امر چی بوده تصور مقابل این که اون تصور مقابلین رو چون حضرت استاد خیلی دقیق نوشتن در خلال عبادشون اما خیلی واضح من امرتر یه بحثی بوده که حجیت خبر چون امر امرتر است اون مقدار مسلمه از تحبادش درجه تو که حکداری باشه باشه متعرض افکان و قرآن نشه یعنی حجیت خبر زورش این زور رو بودید مثلا فرسو در رواز داره که مثلا قائمه آب نخورید مثلا در رواز داره تو هری نماز نخورید این تو قرآن که نمیده اصلا مراد از وجه خبره یعنی احکامی که در قرآن نیست احکامی که در قرآن نیست این مراد از وجه خبره و اما اگر خود قرآن که اصل تشریح است و امده تشریح از متعرض شده باشید لذا اگر میخوانی جواب بدن گوشتنشون چی رو باید بحث بکن بگن آ خود خبر افلاق داره چه احکامی که در قرآنی ثابت میکنه؟ چه احکامی که در قرآنه تخصیص میزنه؟ وقتی در مقابل این اون شهید که الان عرض میکنه اینا گفتن اگر بنا بشه خبر شامل قرآن هم بشه تا چه حد؟ دیگه از خب میگه اگر بناسونتا عرض قرآن بشه میتونه قرآن نرس بکنه؟ شما آمده گفتیم که قرآن نرس میکنه خب شو گفتیم تخصیص میکنه؟ اگر گفتیم تخصیص نیزه با نرسان پار بشه این شبهه رو چون مرومه استاد ادله طرف مقابل رو آورده این دلیل به اصطلاح آخری استاد سفحه 314 و منها لوجاز تخصیص عموم کتاب به خبر الواهر لجاز نسخو بی ای زن حیثوین نفو قسم من تخصیص و حوات تخصیص به حسد الازمان حسد چاپ الازمانشه الا زمان خب این من غلط چاپ شده الازمان فلا فرقه بینه ما الا انف تخصیص المصلح، تخصیصون اینم غلط چاپ شده این شده کار مصطلحشی تخصیص هست اسم نزم آخر شده الا انفی تخصیص بالمصطلح بل... نه به رسول انظر بله الا فی انه فی داره الا انه تخصیص المصطلح تخصیصم میتونم پیش اضافه باشه فی اضافه الا انه تخصیص المصطلح تخصیصم این درسته فی اضافه یا بحسب الافراد الارویه وزاقه تخصیصم بحسب الافراد طولیه پس روشن شد. این رشته بحث یواشتاش داره برای روشن میشه از کجا شروع شد؟ یه وشته بحثی بود که ما برفر. اگر قال به حجه خبر بحثی میکنه شدیم یه این نکه فنی که علمای اسلام که یکاش کار هم از همینجا ترد مسئله رو میذاره. غیر از حالا مسئله کلام ابوبکر و اینا این بود که ما از ادله و حجه خبر چه مقدار در میاریم در میاریم احکامی که در قرآن نیست یعنی شریعه الاسلام او وسیعه شریعه شیعه بحث عملیات حداقل اونجوریه که وجه نداره خبر واقعی اونجا بود یعنی قران متصدی نیست اونجوری که قران متصدیه قران متصدیه هاجی اونجوری که قرآن متصدیه دیگه قران متصدیه پس شما نگید خب این حرف خیلی صافه اگه ما خبر واقعی بودیم حجته کو از لوازم حجته شام که که و با تحقیق می‌رسم که اون چه نه این نیست هر مسئله علاوه منخواستم مناظره داشته با استاد رسولی شروع کنیم مسئله اینه روشن اونی که علمه های اسلام از اول اولا اینا معترض از این حجیت تعبدیه ان بر الله بنعرض می‌کنم این حجیت تعبدی رو به این معنا نگرفتن اشاره که بده هست اونا یکی من خود جیت تحبودی تصور کردن که اجاعتم فاسبون بنادن شاهر مقدس ما رو تحبود کردی که اگر آده خبری گفت با، تحبودن باید قبول بکنی بگر تحبودی؟ اونا میگن این که شاهر حامد ما رو کرده حد و حدودش کجا هست این حد و حدودش این است که به یک حجتی دیگه جاوش نباشه اگر قرآن جنوبش باشه این نیست مثلا فارسی نماز در قریب پوشیدن حریرم در این بحث مکایسه با بود پوشیدن طلا نماز ایان اگر در اینها روایتی آمد نه ما حجتی این چیزی قرار روجه تعبدیه این, این ما اما اگر آیه آمد که روایت آمد که جلو آیه رو بگیره مثل تجارتاً ان تراز و که ظاهر آیه میگه هر تجارتی ترازی باشه کافیه ترازی از ولو مجبور باشی من راضیم آقا طرف هم میگه من راضیم دو طرف این راضی هستی؟ این که تو موشن روخم به درد آقا خب فرقه چرا؟ چون نهن نبی هم به این نهن نبی هم به اقرار تخصیص آیه تخصیص این هم یعنید میگفتن که این رو ما قبول نمی یا روایت و ح برقه. اونی که گفت نه خبر گذرده تا اونجا هم گذرده اون پیش آمد از اونگر نگر تا اونجا هم گذرده تا نهست هم اگر شما رفتیم تا تحقیل کتاب میریم تا نهست کتاب البته آقای خویی در اون مسئله رو میخونیم تا من خواب اجمالم دخونم جواب اجماع قطعیت از مسلمی سنتاً و که نرس جایز نیست و این کشف قطعی میکنه که نرس جایز اما از این حالا شد قبعه به ما آقا نه مخالف دارید تو نرس هم از تا مرزان میکنه مخالف مثل داوود مری صحانی صاحب مکتب ظاهری شون مخالفشون یه نرس هم میشینه شون مفضوعیت تو باید خبر، باید تو باید تو باید دقیقایی چی شد؟ سه تا مبنا شد یک حجیت خبر تا جایی که با قرآن در نیبشه دو حجیت خبر تا جایی که تخصیص کتاب بزنه یا کتاب سه حجیت خبر هر تا تا مرحله نه آن من یعواش هاش بقیه میکنم خوبه که چون اهل موفقه این... خبر واردی شما میگه شما خبر پیغمبر مشخصه مفترقه این حالا او اف... ها این نکته اینه که اگر بگید ببین دقت بکنون نه مثلا سنن کتاب میزنه حاکی سنت الان حاکیه. در این که سنت بحث سره حاکی ده اینکه سنت پیغمبر میسن تخفیض بحث دیگه‌یه زلانی این ترجعه درست هم هست ما هم اینشاره بر عرض میکنیم. پس این نکته ای داره که چه آمانه برد خبر رو هستن داره که سنت تخصیر به قبل روزه خبر چه خصوصیت داره که برد خبر واقع وجهت گردن اینشاره برد بحث باشن پس مرحوم استاد استدلالشون و تحریف و ماده به آنها قدس علمان آنها قدس الله که تخصیص میزنه البته مرموم استاد تصور این که اشکال این هست که کتاب قطعی ایشون بگه درست کتاب قطعی سندش قطعی لیکن دلالت دیگه قطعیشون عامه و خبر سندش دلالتش قطعیشون کخیز میزنه لیکن عدله جذبت آمد با سند خود جده این هم میشه قطعی, قطعاً قطعی می این هم بهش عمل بکنی این هم میشه قطعی پس اشکال داره یعنی ذهنیت مرموم استاد این و فکی بوده که کتاب قطی خبر زنی چطور زنی میخواد قفید رو تخصیص بزنه این نبوده تنها این ذهنیت نبوده که مسئله قطی و زنی باشه دقت سرمانی ولی حضرت استاد از این راه وارد شدن من توضیحاتش از کردن این دلیل ایشان و نقطه ایشان که از دار و زنی وارد شدن بسید هم گفتن سند برای زم نیست ولکه نیجه با قطعاً حجت عدل و میگه دیگه قطعاً حجت بعد ایشان عدله کسانی که شباهات به قول ایشان یکیش همین که الان اشاره گرم که کتاب قطعی و سند و خبر زمی و سند بعد جواب زند جواباشی زن محروف گفت چی نیگه دیگه دیگه دیگه هم بحثه ستو هم کندی دلیل دیگری ایشان و منها انهو لا دیل الاعتبار خبر الواهد الا الا و چون اجماع در این لحویت قدر متعقنش اخذ به قدر متعقن میخونی بعد ایشون میشه مقدار متعقن ما ادالن یکنین خبر علا خلاف عموم کتاب اطلاقه نه قدر متعقن این نیست قدر متعقن اون احکام نیستی در کتاب نیامده، آی خوی نشن قدر متعقن اون که کتاب خی... روایت تخصیص کتاب نزد این نیست دلیل. اونیش که در این اجماع از قدر متعقن مرادش از قدر متعدن اینه مثل نماز در حری این در کتاب اصلا نیامده نه موافق نه مخالف تخصیص نمیزنه کتاب رو. چون تخصیص نداری این شاملش میشه آقای خویی اینجا جوابی دادند و یه ذاره که امده در این سیره تفیه از اوغلاست نه اجماع خب این یه مقدار مشکله اگه سیره باشه خب مشهور بین علما اینه که سیره در ایلوبیز. حل نمیکنه کنه رو با این مقدار که ایشان فرمودن، و همه حال ایشان جواب زن که چیره قطعی داریم سهده خودت رو با همین بحثی که نوشت آن باش بعد از همه هم ها اخباری که دادل هست بل اینکه عمل به کتاب اخباری که که روایتی که مخالف با کتاب الله زخروف از باطل از دیوار بزنید یا لم نباله برد ایشون فهمدن و جواب این اخبار موارد تخصیص رو نمیگیره. اصطلاح هم یه اصطلاحی دارن در اصولی که جمع بین آموخات جمع ارخیست و اصولا بین آموخات تا آرز نیست گاهی علی شعبی هم به تا آرز غیر مستقر اگر گفت اکثر علماء لا تکنف و ساغل این تا آرزش غیر مستقره افتلاعاً تصور میکنی بلا تا نیست این تعارض غیر مستقل را استاد این توضیح میدند. الجواب عن ذلك ان الراهل برای مشروع به عدم شمول تلك الاخبار ذل مخالف تل مخالفه دل بدویه. به اصطلاح فکر شک نپوشید شرط مخالفت بدویه. مراد ایشان از مخالفت بدویه همین اصطلاح تعارض غیر مستقل است. یعنی ابتداً خیال می‌کنیم تعارضه اما تعارض نیست. پوشش این اصطلاحات رنگایی می‌خوان برای اینکه خیال مثل مخالفت خاص در عام مقیّد مطلب این مراد ایشان است بعد ایشان دو تا دلیل اردن که شامل نمیشه متأسفانه این چاپی که من دارم که صفحه 313 این باز اینجا پریده از چاپ این صفحهش در کتاب من چاپ شده باز اگه یکی از اون محبب‌ها از این چاپ جدید باز برام فتوکپی کنه اونم کیفیت گم شده چه فتوکپی کرد. از این صفحه 313 هم برای ما چون واقعا چاپ نایدار این صفحه 313 که اینجا آمده این نسخیبنده این اشتباه اشتباهاً رو شماره 2313 برده و اینجا چاپ شده این تکرار شده از صفحه 2313 تکرار شده, شده شبنه چارام هم همین بود که اگر تخصیص جایز باشه نصر جایزه که ایشون جواب دادن تخصیص جایزه ولی که نصف به اجماع بین مسئلی جایز نیست که از اجماعی تو مسئله نداره که ایشون فرم این خلاصه این بحثی که مرموم اصطاب مطلب کردن از سه بخش شد کلامات ایشان یک اقوال که در اقوال کنشت قول نفت کرده دو دلیل خودی ایشان که ادله حجیت میگیره ولی کتاب قطعیه لیکن سند هم یا عمل و به ها قطعن اون هم میشه به این معنا قطعی پس میشه تخصیص بزنه بعدم شبه ها تا رو مطرح کرده استدلال آیان رو مطلب 4 تا دلیل از مواد این نسخه من اشتباه نباشه 4 تا دلیل بوده هم چهار تا جواب 11 این خلاصه کلمات است. قبل از اینکه من وارد بحث بشم تحلیه مسئله و فردا و وقت یک لحظه یادتون در مسئله خبر واحد در طول تاریخ اسلامی یعنی مساله خبر واحد کتاب حالا که اینجا بحثه احوال اینجوریه یک کسانی که اصلا تعبد به خبر واحد مستحیه. امکان نداره امکان عقلی نداره این عده از محسدله بودن و از علمای ما هم ابن قبر دو کسانی بودن که میگفتن امکان داره واقع نشده اصلا ما تحبد نداره این از علمای ما مرموم سید محسده خب تا اینا بکنشون واضح دیگه سه کسانی که میگفتن امکان داره و واقع شده لکن این به اصطلاح واقعی که شده یک نوع تحبود است. یعنی به عبارت دیگر ما باید شواهد و پیدا بکنیم حالا این رو میزن بعد نتایج. بحثش و بعد چهار کسانی که قاعد دارن ما تحبود داریم و حجیت تحبودی یعنی شارع به ما گفته این قول در حقیقت آمد نه که قاعده به حجیت تحبودی شدن سه وقت شدن یه بحثیتون گفتن ما فقط حجیت بودی، تحبود شعره به نیست که خبر اصولا حکمش در قرآن نباشه این یه دو حکمش در قرآن به نه و آن باشه برای خبر تخصیص بده اشکال نداریم قبول میکنید سه خبر مطلقا حجت اله همفیا خالدون ولی ملتید مستدید نه قرآن بشه. از این مجموعه احتمالاتی که در مسئله حجیه خبر و بهbias به, به حجیت کتاب در دنیای اسلام مطرح شده آرایی که مطرح شده مجموعه آرا اینه برای بحث علاوه که توضیح روشن پی داره دیده.